أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صَلِّ على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى الإبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم برادرای محترم اگر انسان گوش شنوا و قلب روشند داشته باشه ما فکر بیکنم امید اگه کرد که چند طفل معصوم اینجا اگر چی اونا ظاهرا اطفال خرد و کوچک معلوم می شدن ولی از داخل و از قلب معلوم میشه که پیامی داشتن و واقعا ترانه که خواندن ما به او بسیار متعصد ما فکر میکنم از تمام صحبت ها و گفته هایی که ما می امی پیام از اینا بزرگترین پیام بود که اگر کسی خداوند او را قلب روشن داده باشد و از او استفاده بکنند ببینین ایت چی میگفتند و ما باید از اطفال بیاموزیم و من امشب شب آمختم؟ آموختم آموختم اگر انسان هرقدر گپ بزنه و سخنرانی بکنه ولی در قلب تاثیر نداشته باشه تمام سخنان و برنامه ها بیهوده میرن اما وقتی که سخنای کس از قلب از او بیرون میشه و معنا و مفهوم داشته باشه و انسان واقعا در حرکت بیاره اونو سخن سخن است سخن قلب در قلب میشینه مؤمنین به پا خیزید مؤمنین برای ما و شما میگن ما و شما بسیاری اوقات وقتی که قرآن خانده میشن ما بسیار خوب مداغری ریاد داریم خوب کلی خدا شور میدیم خوب صدای زیبا زیبا داریم لکن با صدای زیبا و با حرکت های عجیب و غریب ما نمیتونیم که آنچه که در قلب ما ضعیف است او را حقیقتاً بر مردم برسانیم قلب ضعیف، با ظاهر با ظاهر هر که آراسته بسازیم هر قدر فصاحت و بلاغت داشته باشیم و هر قدر با شیوه ها و اصالی به مختلف صحبت بکنیم لکن قلب مرده داشته باشیم باز هم سخنای ما بیتاثیر است لاکن وقتی یک طفل صدایشه میشنویم که با قلب پاک ندام کند برای ندام ندامه برای بر ما که ما فقط نان بخوریم و مجلس ختم کنیم و یا ای که میگه که مؤمنین ای کسانی که شما ادعای ایمان میکنین و میگین ما مسلمان هستیم مؤمنین با پا خیزید این ندای قرآن است، جان با کفز جا خیزید جنگ کفر و ایمان است، لا اله الا الله پرچم عزیز ما قدسیان همین مردم دا قدس ده غذا ناله می کنن هشت که خون همه بارن تابکه بزنجیر ای خدای مظلومان قبله شما گوید ببینن اولین قبله مسلمانا چی میگه قبله شما گوید محشر مسلمانان بیانیس و بیارم ای خدا خدا گویان قدرتم برفت از دست از مزدرون بشکست ای آمر کجایی تو؟ ای آمرد کجایی تو تاکونی مرا شادان کوچچین مسلمانان بوسنی و فلسطین کو مسلمین پریشانند کافران همه شادان انگلیس و امریکا آن دو گرگ درنده امت محمد را کرده به سر و سامان مردمان افغان را کودکان و پیران را می کشند و می سوزند و, و, و, و, و وای ای مسلمانان کار دشمنان شادی دشمنان شادی میکنند کار دشمنان شادی ناله و فقان از ما یاد عزت دیروز چشم میکن نات روح مصطفی محزون خیل خود سیان دلخون توق بندگی تاکی ای جوان گذر از جان خون پاک افغانت درد و میدهت ما را جان و دل فدا سازیم جان و دل فدا سازیم بهر دین و مولامان شربت شهادت را عاشقانه می نوشیم سرفدای دین حق جان فدای آنجانان مؤمنان مؤمنان با پا خیزید این ندای قرآن است جان به کفز جا خیزید جنگ کفر و ایمان است الله اکبر برادران <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <التخور> <ده> عزیز امروز اگر ما به شکل خاموش بشینیم و همیش در چار محفل و چار سخنگانی تمام برنامه ها را ختم بکنیم در حقیقت ما بسیار ظلم بزرگ کردیم به خود به خانواده خود با اولادهای خود و فامیل خود و مردم خود با وطن خود با قرآن با پیغمبر به همه پشتر به حالای صحبت کرد تلویزیون ها نشان که یک تعداد جوانا مسیحی میشن خب خوب است علتشو پیدا بکنیم ترازی بحث بکنیم که ملامت است ما ما ملامت هستیم یا نیستیم علما ملامت هستن یا نیستن پدرها و مادرها ملامت هستن نیستن کسانی که خود رایی امت میگیرن معلمین هستن استادا هستن ملامت هستن نیستن سرازی به این بحث بکنیم من میخوایم بقیه سبلتان بکنم ای قصه اصلا در یکی از کشورهای اروپایی روخت داده یک روز یک عالم بزرگ غربی خودش قصه میکرد و گفت برای ما قصه میکرد قصه زندگی خوده در مجلسیات کردن گفتن یک پروفسور غربی مسلمان شده این پروفیسور قلبی پیشدی داره یعنی دکتورا داشت در دا ایژوکیشن تعلیم و تربیه از این پرسان کردن که شما چرا مسلمان شدید؟ خوب سهل کنین پرسانش کردن چرا شما مسلمان شدید؟ این خنده کرد گفت را یک تفلک سنفدوی مکتب مسلمان ساخت تفلک سنفدو کلیه ایران بادن که تفل سنفدوی مکتب چطور میتانه که یک پروفسوری که دکتورا در تعلیم و تعریبه دارن ایره مسلمان بسازه از پیش اشتخاذا کردن که چطور مکلان کلان کلان ریش سفید جوان بسیاری کسای هستند که خوب خود مسلمان بگیرند باز وقتی که در, در هندوستان رفت یا در یک کشور اروپایی رفت یا در یک مجلس غربی ششت باز از او که اگر و اگر شراب میخوره ای دوتا میخورن او اگر خانم خود دوتا پیراد پرشند ای سف قولای آسینای خانم وقت کنده خود وقت وقت که خود میبرد که من اصری مالوم شد ما و دنبه از او میدویم این طفل چود را مسلمان سا و طفل هم طفل دو ساله گفت ما در یکی از کشورهای غربی گفت مجلس رفتیم و گفتیم که سویه تعلیمی پایین آمده راه حل چیست مقدمه این مسلمان شدن من گفت بالاخره متخصصین تعلیم و تربیت فیصله کردن گفتن اکثرا در مکاتب مردمای ضعیف معلم سنفوال دو میشن و اون روزگم هست و یک روز در دوکان خود هست و یک روز اون طرفه و تمام روز در مکتب نمی باشه از این خاطر سویه از می سنف اول خراب شده میره پس گفتن رأی هر چیزی که ما گفتیم رأی حلیه است رأی که ما کسانی که استادای بوهن و در تعلیم و تربیت ماستری و دکترا دارن یاد بیایم سنفه های اول درس بدن تفلک های خود گفت چون کلام اصداد پوهندتون بودم من روان کردن در سنفه اول که برو در مکتب درس بده رفتم در مکتب ابتدایه طفلک های سفر دو هستن و درمی سلف روز اول داخل شدن خواستم درس خو کسیم نمیشه که در روز اول دار و بدون از اینکه بفهمی شاگردت چی یاد داره و چی یاد نداره و اروز شاگردت علف ذره علف ذره یاد نداره تو وقت باش تجوید شروع کردی مقدیب بشاره پیش دید سیشته و اروز سعی گفزدن نیفه ما تو برشت قلقله میکنی قلقلا و کو را ایران نمانه که چی گفت والا اصلا گفت مطال یک تا چیزد و رفت گفت من رفتیم از تفلکا استعدادشم علوم کنیم از کجا شروع کنم چی بگویم آمیانه که بزنم این مجلس کلش ادباه هست کلش گلستان و حافظ و مولانا را کلش خانده نگه من شیر بر ها شروع کنم بگویم گفت بلاخره از چی خواستم ز به چی علاقه دارن تا از امون جای مطابق علاقه درست رو شروع کنیم گفتم ما شروع کردم گفتم خب طفله عزیز پیش از این که من درست شروع کنم میخواییم از پیش شما پرسان کنم که آیا شما میخواییم؟ چی میخواییم دارین درست شویم؟ گفت یک شستات کردم بچیم تو بخیم؟ چی شوی بچه خیز کفت که من میخوایم که دکتر شوم چرا دکتر میشه؟ گفت من میخوایم دکتر شوم چون پدرم داکتر تب است مردم تمام روز پشت سرش میرن و در دادواخانه خوصی بسل شرخ ورخونه زیاد. یا که بچه خالی خود است در لабوراتوری مخرب کرده و بچه عمق خود صاحب پیشکاری والا جور کرده و بودگیرش صاحب ابد ماینات تلویزیونی صاحب و تلویزیون کنار رو بیکریش مانده او یکی دیگر ابیل است اب خانه مخود است در اورتوپیدی داخل کرده و باز باد که اگر تو رفتی اگر معلمی صاحب رفته شد که فی اعرزش دارم میگذارم برو خود تماين کو خب یک تبلت خوب میشه اول برو خود تماين خب کو باز باز باد ازی برو برای شک سیروم برش, برش میتسه بچی همیشه خفه نشه باز یک سیروم برش دوستان میکنن تزمی نمی دواخونه زیر بگیری به خاطر ازی که مرکزی قراردار داره مصرمیزش دوا را برایش شکله که یعنی پنجاه قنفع با زامی دکتر صاحب امی دکتر صاحب باز میبینه که در خانه خدا استاد از ادبی پیصه جنایت خیانت این دکتر پاتکی پاتاکوتا پا دک نیس که تو برو راي مردم رو بگی. این دکتر متخصص صاحب که خون ملت خورده، باز از خون ملت باز سایب حجم، باز پشمش میاد. تین تین رفتم خدا قبول نکنه آجده. تو ظالم خدانا خدا نا ترس. من گفتم یک روز یک معلول سمت بیشتری میشی شابو گفتم تو داکتره تو خاينه که تو دواخانه تجارت میکنی، سر خون مردم تجارت میکنی، زلم میکنی ماشین. خب به هر صورت ما طرف افغانستان ما دو مرد که دو گروه پا گپ دکتر است. گف گفتم بف... <تصفيق> گف است ما داکتر سه گفتم گف پادر نشی داکتر ما میخواین داکتر شیم خب درست بشه صافلی خود چی میخی گفت ما میخام انجینیر شوم تو چی میخی اقا شخس گفت والا می پادر و مادرم تمام روز در مقابل تلویزیون شش تا بین کشتی کج سالم ما میخواین مثلا در دکره واره باید با شما دمسند کی روز 5 تا 6 تا صبح خود چپا گنم ووره سر میز چپا ووره و دسته صحیح صحیح بشیش تو چی میخواهی شوی بچه؟ ولی اصلا مادن من که اون دوست رکاسه هست دمه ده مسلمان ده وای چیزه مسلمانیم وقتی که در پیشری خاندان و فلم و تلویزیون و نه محرم برش معلوم است نه حلال معلوم است نه حرام برش معلوم است نه هیچ فقط تمام روز صاحب نوجو تلویزیون شیشته تا و ساخت تخت تکلم می رود اما روز رقص آرا سالم می کنم ولی ما دیدیم که بیشتر امیر رقصها امروز دنیای دنیای رقاصاس ما می که بریک دانس کرد بگیرم ما هم دانس سر باشیم یه بیشی خب هر کس هر کسی از زن خودش دیوار من و از دارون من نجست اسرارم. من الان کس گفت با سیستمه چدا گفت گفت یک بچه یکی خرد دوی دوری ماشی گفتم گفت بخی بچه بچه گولم تو بخی برو تو چی می خواهی شوی گفت ما می که صحابی شویم اروپا کشوریس کلش فساد و فتنه ای چی می خواهی شوی گفت I want to be صحابی <تصفيق> من ما می که صحابی شم می گو ما گفت ما چیز دمین گف صحابی مانای صحابی چیز مخنام می فهم گف صحابی مین the student of the university of Prophet Muhammad پیس بی اپن هم که صحابی شاگردای پوحانتون رسول الله صلی الله علیه وسلم صلی <تصفيق> ما... ای مجد؟ مجد که یور بله جماعه نزدیک از دیواناش اومد. لباسش میگه چی میگم میگه من باز گفتم که از دیگران یوور تو کلام به انطون هز به نام حضرت محمد سلام میگه. بله راست. کلام کتاب درس میخونه. گفت کتاب میخونه که تنزیل من رب العالمین این کتاب؟ کلام کتاب از گفت قرآن عظیم مشانی نویسنده کیس؟ کس کنوش شکل معلف ازی تابیس؟ گفت این معلف نداره تنزیل و مرب العالمین در خشتش دوشت از جانب پروردگار عالمیان سرکو خجالت آور نیست جوانای مرک برسن کنی قرآن یاد نداره رشتا فیدای ما مزدید بسیار لکس جور میکنن کنند مخالف درجه که بودن مدرسه و مزدید خودستند پشمه اگر سبید نهید که استاد ما خدا این مدرسه رو نمیمانم باز قایه های قرآن خو مزدید رو چطل می کنن. گفتم خدا تا رو تبا بکنند بان که مزجد قاری قرآن کونه بسازن بان که این فرشت قرآن ده او مزجد ده او فرشه که قرآن خانده نشه او مزجد مسجد درار است، مسجد منافقین است، ده مزجده که القی قرآن نباشه حفظ قرآن نباشه مزجد مخصوص فاتیا گیری و مجلس گیری باشه ده او مزجد مجالس پارلمانی شوه ده او مزجد تنها و مزجد مخالفت با قرآن اونو حدیث جاوا عالم ماننده نشه الله اکبر مسجد مسجد منافق است مسجد منافقان است مسجد باید مثل مسجد نبوی باشه او مردم مسجدی که به خاطر خدا واد میجه و خالین ضرورت نداره و قندیل ها ضرورت نداره و کاشی کاری ضرورت نداره با مسجد ضرورت داریم مثل مسجد رسول الله خشت خام صحابه پخته رسول الله مسجد داشت از خشت خام جور شده بود لکن انسان های پخته داشت رهبران جهان تربیت کرد عمر را تربیت کرد که قص صفات حکر. خود سفتح کرد وقتی که عزت آمر به بیت المقدس میرفت وقتی که اون که رسید امرای غلام و خود سوار بود در سر به خاطر عدالت سه ساعت تقسیم اوقات جور کرده بود در ساعت اول بر غلام خود گفته ساعت اول تو سر شطر سوار شد ساعت دوم ما سر شطر سوار میشم ساعت سهوم را بشش خالی میمانیم که استراحت بکنم وقتی که عمر فاروخ به می می قدس میرسن مردم میعین فاتح رسید امیر رسید امپراتور اسلام رسید مردم میرن که برازو احترام بکنن میبینن که در سر یک کس سوار است و در زیر یک کس مهاری از او را گرفتن با کسی که سر شطر سوار سلام میتن برازو احترام میکنن برای کسی که در زیر سیطرام نمی کنن او نفر از پایان می میگه، و او مردم مهمیر المومنین نیستم مغلام هستم سر شدور سوار هستم او امیر المومنین اونوست که در پایان است. دلو دلو دلو دلو دلو دلو دلو. رحبر کلیسامیه و برش میگه که ما کلی را به خاطر ازی به کماندان مجاهدین ندادیم از علامات که ما داشیم که قدس فت همه کنه گفو وقتی ما فهمیدیم که قدس فت همه کنه کسیست که خودش آن قدر عادل است که دویتون دا مقدس داخل میشه خودش نظیر است و غلامش دستر شطر است ما فهمیدیم که حقیقتا این امین نفر است آمد دامنش اگر افگف گفو امر بتی وقتی دامن وقتی که دامن از تو امر اگر دید که پیو انداشه حساب کرد دید در دامه عزت و پیوند است ابدا پیوند است بود از روی فیرمی حقیقت از که ما در کتابهای خود بودیم که خود سکر از می کنه که در لباس مشغول نیست در اختلافات مشغول نیست عدالت شدت تو امرائه غلام و, شد و را عدالت میکنه کنه اونو خود سفتحه همه کنه ازی خود امروز دشمن اسلام که قوله و بانک های دولاره بر مسلمانان میته برای, مسلمان برای کسانی که خوب کماندان مجاهد از برای اون خماش دبل مقرر میکنه به خاطر چی به خاطر از که کماندان مجاهد رهبر جهات عالم دین وقتی که مصروف دنیا شد وقتی که ماش دلاری پیدا کرد لا اله الا را به ایرخش پایید می کنند و به ایرخ و در وطن خود بالا می کنند اونا به پلان کار نمی کنند اگر ما مماسی میشن از دست ماست، از دست کازویس که 50 دلاری داره، از دست کازویس که در موترای پنجاه دلار و روز خدا دیر میکنه و خدا نماینده اسلام قرار میده، خدا خدمتگار قرآن, قرآن قرار میده، بهم رای کسی کرآن در میده نه یک نیز میشینه، به کسی که دشمن خدا و رسول خدا از دنیا و غل قط میگیره، به کسایی که مسلمان ها رو و اطفالشانه بمبارد میکنه، و همراهی از او دردک و شراب میخوره و ایبدش تبریکی میده و همراهی از او در جشن کرس میزش شراک میکنن از اولادش ترجمان است، خودش به همراهی ازو یک جای میشینه و برازه مجالس محافظه جور میکنه. مسلمین با باخی عزت جنگ کفر و ایمان است امروز روز است که تمام مسلمانان در خوازند برادر هستند پس من با یک که او تفلی که در اروپا یک پروفسور مسلمان میسازد تفلی که برسان میکنه برش می که خب پروفسور پروفسور میگه من از کیسه خراب شوه دیوانه شوم اصحاب خدا زرس بدن. ای طفل چی میگه؟ بچه میگه، بچه ای پانتون که تو گفت میزنی، ای پای پانتون شکر داشت، میگه بلی داشت، استاد داشت، میگه ولی داشت. کی بود استادش؟ محمد رسول الله. استادش کی بود؟ محمد رسول الله. گف شعر داشت کبود قف والذین معه وشداؤ على الكفار روح ماء بينهم شعر داشت کسای بودن اشداؤ على الكفار روح ماء بينهم اگه دیو خدا دورست داشتان دبا این خد دبا خد مثل از چاکلیت بیدن دوستی محبت سمیمیت برادری اجده والا کفار در مقابل کافر چمشیر تیز و برنده بودن برش میگه چی عرامت داشت چی هدف داشتن طفل برش میخانه که تراهم رکعن سجده هر که می دیدن شان روک و سجده به الله می چه چی هدف داشتن؟ یبتغون فضلا من الله و رضوان فضیلت از الله می رضایت الله را می امروز که مسلمان رضایت شرق و غرب خواست امروز که مسلمان نام مسلمان در مشکلات خود و ملل متحده که رحبرش یهود است به او رو جو کرد رحم خدا سرزو رحم خدا سرزو خدا بازی میتن ترسم نرسی به کعبه اعرابی که این تو میروی به ترکستان است میگه ما وقتی که های ازی طفل خوت صحبتش بسیار علمی گپاش دقیق است شاگردان مکتب کی بود زنا بودن یا متها بودن؟ گفتنی پروفسور زنای ازو مثل زنای شما وای بود زنای ازو مثل زنای شما وای بود که باید که پانتون میرا اطمان بر پانتون رفتن باید آرایش بکنه دیگه اطمان باید لباس و باید لب حتما با تادر خدا بوشتو کنه گفت شاگردای پوهندون رسول الله ببی سمیه بود در شهید اسلام ببین خدیجت الکبرا بود که در بین صحابه رسول خدا شیشتر حضرت عبی هرین رضی اللہ تعالیٰ عنو روایت میکنه که من امرای پیغمبر خدا ششته وحی برای پیغمبر آمد و برزدوکی آموحمد رب بکن پر وردگار تو سلام میفرسته بری یک زن که خدیجه هست ببی خدیجه هست امروز تو مسلمان پیسیت در چیم میکنی امروز مسلمان کتماد از صف نماز نماز میخونه ولی پخته خود براقاسه ها مصرف میکنه اگر دانش بگی یاری اسلامی و کمرش مث اگر دانش بگی برای مدرسه اسلامی و به مدرسه حفظ قرآن و به مدرسه دوره حدیث و تفسیر کمک بکو کمر کنه ولی وقتی که در کارهای منافقت و جاهلانه باشد باست پسی خود خوب نصرف میکنه بیبی خدیجه بی خزیجت چرا الله برش سلام میفرسته خاطر رزی برش سلام میفرسته که تمام مال خود در راه اسلام اصرف میکنه از اون برای کرسی دیفت خدا راضی میشه؟ با از این راضی میشه که قبل از اسلام بزرگترین تجار و بزنسمن اسلام است ولی وقتی که مسلمان میشه تمام مال خدا در راه خدا مصرف بکره برش میگه که پیغمبر خدا برش میگه که یا ابا بکر کن مالت در راه خدا و در راه جهاد مصرف کردی برای فامیل چی رو ماندی؟ میگه برای فامیل الله و رسولش رو اونجاست که ما فقط حاصل نکنن پروفسور میگه نگاهواست ماسکپایزیش طفل ایران بدون التهابیکی هست مکتب و هم طول استاد شعری چیزی نمیفهمه ای رو خزل خود گفت نمیزنن گفت تلفن تلفون تلفنو به گرفتم گفتم بریم خونه شما افغانستان نبوده کشور اروپایی بود لكن مسلمان است مسلمان ده هر جایی که بود مسلمان است ده هر جای بود مسلمان است اما اون تنیس بی سیدی مسلمانای بی غیرت را که وقتی طرف اروپا میره باز خانما که چادر کلوله میکنن است کلکینه طیاره و صد میفرتن آستینای خودمه میکنن سایه پتونای خود ما ما یک دفعه رفتیم اروپا یک چند تا جوونا که ما بود زوزو پتونای خود در نکردن قیچی گرفتیم چرا گفت اروپا مودز گتاب درست پتوندار بودیم روز اینجا جوری خب باچ نداره ما باید با سیستم از راه زندگی میکنیم ولی اتفق در قلب کفر زندگی میکنه در فلکه صرف دو دوین مکتب واسه تلفن پدرش رو رفتم گفتم, گفتم. این تفلک شما از گفت بله ممکن از ممراه شما بیایم بشیم خانه تان کجا از فلانی منطقه میگه رفتم خانه ازی. وقتی که خانه از اینا رفتم این نفر دیدون که دادن لب سرک پیشم بر و برای کرد داخل خانه شدیم این نفر بچهکای جوانش هست داخله کدرو زد زنگ زد کدرو زد واشاد. بعد در بعد گفت السلام علیکم و رحمة الله. میگه باشه جوان گفتن گفتند قف. وعليكم السلام و رحمة الله وبركاته و مغفرت. میگه دیدم سید کنای شده چای برمرسی. دا پولیش کامه کولچام مانده گیز، کاکتیام مانده گیز. میگیم ما پرسان کردیم که. برادر؟ یکی چیه پس؟ ما وقتی داخلی خود داخل میشیم، وقتی که داخل خانه داخل میشیم، بچیم قرار میشه استاد از دانس کده میره؟ خبرم نیست که پدر داخل شد یا نه. دکتر میشه سرش چیز استوپیش موسیقی مانده و قراره و کلی خود مانده و داورده بای افرینت خود کار میکنه. والا خود اگر قسمت باشه که. پدر آمد یا کدام مزدور مادر اولادار خب ما میگیم که یک پیلا چای بیار میگه چای ما چیز نکنی اگه نی با سر سازمان حقوق زن با سر خبر میکنم حقوق مساویست دیگه حقوق وقتی که مساویست حقوق مساویست تو چای خوده بخواه ما چای خوده آشنایید مفت ایوانو شما ایچی خصم گفت ما خود قانون خود داریم که وقتی که احترام میکنی یا سر استعمال میکنی یا باید به های پرسند استعمال کنی با کسایی که ردبه بلند دارن اما به زیر و وفاین و به یا باید سرمال استعمال نکنی ورش گفت که دین شما دین انسانی هست که انسانها ساختن و هر انسان خواسته های خود رو پیاده کردن دین ما دین ربانی هست پر ورگار با عظمت بر پدرها امر کرده که شما در دا خانه داخل میشه باید بر اولادایتان سلام بتین وید برای خانه هایتان سلام بتین برای دخترهایتان سلام بتین رسول الله صلی اللہ علیه وسلم وقتی که در خانه خود داخل می شود بیا بی می بود برشان بیگه فسلام علیکم و رحمت الله سنت رسول الله هست گفت پرساش کردم که سلام چی مانه؟ سلام چی مانه؟ دو سلام برادر عزیز اول السلام یکی از اسماع استفاد است وقتی که تو امروزه یک نفر مسلمان روبرو میشی، برش میگی السلام علیکم او مسلمان الله مراقبت است. باخبر باش. الله را به یادش میاری. برش میگی السلام علیکم دوم سلام به خاطر عزیزم میگم که وقت در سلام داخل داخل خانه میشی رسول الله صلی الله علیه و سلام به یک صحابی مبارک میگه که وقتی که در منزل داخل شدی سلام بگو به اعضای فامیل سلام بگی به خاطر عزیزی که سلام برکت بر تو بر اهل و اعضای خانواده بر سلام سوم فلسفه سلام گفت وقتی که تو سلام میتی سلام به معنای دعای سلامتی هست وقتی یک مسلمان دیدی اول برش دعا می کنی که خداون تو را سلامت داشته باشه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برای مسلمان مسلمان باید باید مسلمان دیگه بدبین نباشه اول برش رحمت خدا و برکات خدا و سلامتی و صحت برش دعا بکنی سلام خلاصی از شر شیطان است سلام خلاصی از شر شیطان است اگر میخوایی اگر میخوایی که از شر شیطان خلاص شوی، وقتی که در مقابل تگین انسان ضعیف آمد شیطان در بغلک های وست میکنه سلام نتی تو خو کلان آدن هستی تو خودیش سفید هستی، تو خو خان استی؟ تو خو مولوی هستی تو خو استاد استی تو چی تو بردی سلام بدی ر انداخت دجال وقتی که گفتی السلام و علیکم و رحمت الله و یک تفلک دوازده ساله کمر شیطان و شکستان دی سلام دیگه فلسفه سلامی است که سلام اعلان صلح هست وقتی که در قریب فازل بیگ داخل شد کل جوان ها سرود لقلق سهل میکنن یکی هست وقتی گفتی السلام و علیکم و رحمت الله کلش میگه آلیکم و سلام و رحمت الله مونده نباشی برش گفتی ما کچماخ در جنگ به جنگ خبر سلامتی و دوستی سلامتی سلام سبب محبت از بین مسلمان ها پیغمبر خدا گفته تا وقتی که محبت نکنین مؤمن کامل نیستی گفت چه خصم مؤمن کامل میشین پیغمبر خدا را پرسان کردن رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیه و سلم گفت افشو سلام بینکم سلام در بین تان رواج بتیم تا محبت بین تان پیدا شد این فلسفه های سلام شروع کرد این پروفسور میگه که ما خودم در تعلیم دکترا دارم ما کلاگیر دیگه را بردگرا درس میدم تا دیروز طفلک صنف دوش برام دست میداد آل پدرش برام آدمگری رو در خانه یاد نتا میگه قرار خبر نداره من شخص پروفسور هستم بالاخره میگم من وقتی که از این نفر پرسان کردم که خب برادر بیم سر اصل مطلب گفتی بچه‌گاه که تو برام گفت مامای خاله صحابی شدی صحابیان عزیز مبادا عزیز ما ملکی که زندگی میکنیم اینجا فساد از تلویزیون های مختلف هست مسیحی هست همین کسایی که دعوت میکنن بس مسئیتیارا میشینند میگن این ها هستند که یا به اشکال مختلف با بسیار بی حیایی ها که باز اگر وقت باشه ما قصای مزین میسازی از اینا برای ما بسیار خوب معلوم است ما اصلا خوب قصه میکنن از کل قصا از با خبر هستی کل پلان های میفهمیم یا چی میکنن خب بل اخر میگم دیدم که اینجا فساد و فتنه و همه ای کارا زیاد است از این خاطر میگم من از یک پدر مسلمان من حيث یک پدر مسلمان که الله جل جلاله برای ما عمل کرده آیت قرآن از قاری سر تو بیا می آیت قران برای ما آقا سر بخون یا ایها الذين امنوا قوا انفسكم این فروقي از تو قاری سر آیت قرآن مشنوه و باز این آیت قرآنم که مشنوه به عمل میکنه اینال حال قاریس هم ما ترجمه میکنم شما بگوین که در این چند سال ما و شما مسلمون بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایوها الذين آمن خو انفسكم و وقودها نارا و الناس وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون انا الخالیشا وایستاش بخوام که ما اگیت برشان ترجمه کنم ای الذين امنوا ای مؤمنا خطاب بر کافران است برای ما و تو مسلمان است موت مسلمان که در خانه خدا جمع شده چی خطاب میکنه الله وقتی که میگه وقتی که صحابه پیغمبر پیشیلن که برای جان گفتم اجود که یا ایوها الَّذِينَ آمَنُوا متوجه می که الله بر ما چی خطاب میکنه و ما در مقابل خطاب الهی چی باید بکنیم یا آمَنُوا قُوْ اَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَوْرَهُ مسلمانا کنین یقی وقایتا قید از اینمی مصدر وقایه یعنی و وقایه بکنین حفظ بکنین نگهداری بکنین کی نه قو انفوسکم و اهلیکم انفوسکم اول خود وقایه بکن خود در چنگ شیطان نپرتو. تو از خدا بدست رابطه دکت مسجد به خاطر افدرزادگی قطع نکو به اختیاری کساسن هستن کت رب بزر جلال جنگی هستن خاطر ازی جنگی هستند ده مسجد نه نه که کت افدرزادم خفه هستن خفه گستی هست خانه افدرزادیت نرو رو کت افدرزادیت که باز کسی بمره از شرم باز میرید فاتیه ششینی لکن کت خدا جنگی هست ده مسجد نه کسی که ده مخانه خدا د نماز اگه پنج وقت نمیتونن 30 وقت و دو وقت وقتی که در خانه اصلا نمیای عبادت بفهم در روز قیامت که کت خدا جنگی هست مسلمانو او گوین کت خدا اولادایتون جنگ از جنگ نجات بدین اولادایتون به شان پیش علما و جان نشانه دیری شان در درس تفذیر بجا نشانه دینوی مسجد پیش بر مشکوات شد که وقتی که درس تفذیر شروع کرد استاد 60 نفر بود شروع کرد نفر شده. ای کسایی که شاگردهای خود از القی درس قرآن دور میگنن جواب خدا را در روز قیامت چی خواهد دادن کو انفوسکون و احلیکن احلی اعضای فاملتانه اطفالتانه وقتی که تو اولادتا در خانه خدا نمانی در القی درس نمانی در درس قرآن نمانی اولادتا برای حفظ قرآن نمانی اولادت خود از جاهلیت میره از جاهلیت خوب شاعر بودن باور بکنین وقتی که ما عدویات عربی را میخانده استاد ما پروفسور بود دکتورات از هر داشت گفت اگر آل امرال قیس اگر زهیر ابن سلما سلمان گفت اگر آل وازنده ب ادبیات می سأمت تكاليف الحياة ومن يعيش ثمانين حولا لا أبا لك يسعني وقد أعلم ما في الأمس واليوم قبله ولكنني عن عم عن, عن... فأم جواب يو... ما رفضه مشهر إليس كي ميگه عز شد بيس نسان الفتح نصف و نصف فلم يبقى إلا سورة اللحم والدم ميگه إيش شير إليس كي امروز مزردترين شاعرات خاننا لكن قرآن و عصر عصر جاهلية گفتا اگر علم إنسان در فضا برسه و فضا او را به عبادت خدای یگانه دعوت نکنه علمش رو به توحید نرسانه در روز قیامت در جمله جاهلا عشر میشن در جمله مشرکین عشر میشن کسایی بودن فصاحت داشتن بلاغت داشتن سخاوت داشتن قدرت داشتن پالوانی داشتن یک پالوان عصد جاهلی داد پالوان این روز موتو رو چپه میکن لیکن با اعضای بدن قبیصه داختن. انسان عقل نمیفه عقل کسیست عالم کسیست که علمش کیمیاش فیزیکش بیالوجیش فضانوردیش زمینشناسیش قبش او را به وحدانیت رب زلجلال بکشانه و بگویه که لا اله الا الله محمد رسول الله اونو عالم است علم اگر در دل زنت یاره شود علم اگر در دل زنت یاره شود علم اگر در سر زنت ماره شود امروز د های تفک های خرد خوردکه میبرن و اون میفروشند سر مردم ها در اروپا و امریکا و را میفروشند گرددرک های و چک های افصالی افغانستان دخترک های افال افغانستان وقتی که سر از تجارت میکنن این کسایی که گردده ها را انتقامتر یا مردمای بهساد نیستن به سواد نمیتونن را خع بکنن گ به نمیتونه که او را حفظ بکنن او را نمیتونن پیوان بکنن عالم است سایزدان است کیادان است دکتر توس لکن مگرن در دل زنه دیاره شود علم که در دل بزنه قلب انسان تسلیم ربزال جلال میگردانه علمه که در سر ز، مار میگرده انسانها و اطفال قتل میکره و میکشه و انفوسکم و احلیکم او مسلمان او پیروه قرآن اگر حقیقتا پیروه قرآن هستی در درس قرآن بشی در مسجدت پیش ملای مسجد پیش از یخنش بگی برای حاضر کو بگو عالم اسلام از خدا بترس اختلافات ترکو از خدا نغم سرایی و شیر سرایی را بگذار از خدا ترس بر ما شیر نخان از خدا ترس بر ما قرآن بخان نشه که در روز قیامت بخیزی و رسول خواه بگویا و قال الرسول اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا باز جمله کسای شبیه بگوی از قرآن دور بود با قرآن دشمنی داشت با مجلس قرآن دشمنی داشت با مدرس قرآن دشمنی داشت با حافظ قرآن دشمنی داشت با استاد قرآن دشمنی داشت و ای از قرآن هجرت کرده بود از این قادر از خدا بترسین علماء خدا خدمت بکنیم شان حضور بکنیم ببین مولوی طایب الیاز خدا درس تفسیر قرآن در مدرسه شروع کن ای علماء اسلام از خدا بترسین قرآن در مقابل رسول الله استاد میشین ترکنین اختلافات ترکنین یکی دیگر بدگوید به خاطر رضایت الله درست قرآن بتین دقیقی از ایک اولادای ما از دست اختلافات شما مسیحی میشن از دست شما پدرایی که برشان تلویزیون برین تفلت مسیحی میشن برش سیدی خریدی برش تلویزیون خریدی در روز قیامت در مقابل اولادت محاکمه میشی آیت قرآن قاری سیخان ای یا ایوها الازینونو وأنفسكم وأهلكم نارا. وقائكم إن خدا، وأهل تONA أزواج فAMIL خانم تانم، پدکلان هستی، سنویتن، نواسایتن، برادر کلان هستی، برادر رو خرد و گوشکتن، اینا اهل دوست، اینا را از آتش دوزخ وقایه کنین، از کدام آتش دوزخ کاری کنین، قرآن چی میگه؟ ای آفز قرآن هست، مزدل خود نمیگم، ببینید که کدام آتش دوزخ هستی، خدا میگزی، خدا وقایه کنین، اولادایتان به بقایه بکنین، و الناس والحجارة. آتش که انسانها شداد لا يعصون الله الله سبحان الله. ملاکت های مخالفت امر خدا را نمی آنچه که الله برش بگوه عمل می کنن اتو نشه پدران ما بیانیه نمی تم ما نمی تم که براتان سخن رانی و فساحت گه بذارم سرما خنده کنین لکن اتو که در روز قیامت تو به طرف جمع نزفیلی تو به خاطر که ختم کردی، تو به خاطر که در ختم تراویز ساد شدی به خاطر ازی که تحجد خواندی، به خاطر ازی که جماعت کردی به خاطر دادی مستحق جنت شوی خانم تصخش سرت بیا و بگو یارب رب اولادت بگو یارب رب یا رب ذوالجلال این پدر ما بود این پدر ما شتو به جنت میره این پدر کلانمو چتو به جنت میره خودش به مسجد میره بر ما تلویزیون چالان کرده بود الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اولادت در روز قیامت خسمت واقعی دشمن دشمنت خدایا ما خود نمی فهمیدام به من هندویزم درست دار از اندوستان سریالا میامد امروز اتفای افغانستان اگر فرسان که نام چار صحابی رو یاد ندارن نام چار صحابی رو یاد ندارن لیکن نام اون دوار رو یاد دارن خب پس نمی به اون که ما قصر ختم بکنم وقت ما پورش شده باشه میگه پرسانش کردم که خب به قدر عزیز ای که تو که میگم من صحابی شوم تو صحابی میشه گفت که از دگاه قانونی خود که صحابی شده نمیتانه و از ازی که علماء اسلام صحابی را معرفی کردن صحابی کسی که, که پیغمبر رسول خدا صلی الله علیه وسلم دیده باشد. باوی او ایمان آورده باشه و با ایمان وفات کرده باشه او صحابی است ما امروز نمیتونیم صحابی شویم لکن ایتفلما من, ای من محبت صحابه را پیدا کردند چه قسم پیدا کرده ما با جای که خفتنکی رو پیش سریال بشانم ایوازی که برازی خاندانهای ایندی رو چالان بکنم ایوازی که برادی فیلمی چالان بکنم ایوازی که برای شخص یاد بتم ایوازی که برایش کشتی کج شن بدم من خفتنکی وقتی که از مسجد میام بین شامو خفتن وقتی که فرصت باشه باشم یا نیم ساعت بعد از نان خوفتن طفلکای همه شما یک کتاب از به نام های صحابه حکایات صحابه را قصه‌های صحابه را از شما می های قصه‌های پیغمبران را می خانم. یک روز برش قصه بلال حبشی را می خانم. که بلال حبشی در روی نگستان سر سینهش دشمنان اسلام سنگ مانده بود طفلکای من محبت با حضرت بلال پیدا کردند دیگر روز برش قصه شهادت بیبی سمیه را دیگر روز ای ایمان حضرت عمر برش آن خواندیم دیگر روز قصه محبت صحابه را خانیم دیگر از قصه معاذ و معوذ خانیم که در جنگ خود تو یافتن که ابو جهل از بین ببر گفت آل از یا طالبان مثل که پیشتر مولوی صاحب گفت گفت قایده هست منطقی که اذا تکر الكلام علی اللسان استقر فی القلب گفت ازی که محبت صحابه زیاد به بیان شده محبت پیغمبر را زیاد به بیان شده آل در قلبی ازی محبت شاگردای مکتب نبوت پیدا شده. حال می خواهد صحابی شود بدا به حال اون مسلمان که در قلب اولادش محبت صحابه نباشد بدا به حال اون مسلمان که اون مسلمان اولاد خدا رای دیر نفامونه آخرین نقطهی که می گه بالاخره وقت وقتی من براجی گفتم که بتین کتاب تانه بتین قصی صحابه را گفته های رسول خدا را می وقتی که قرآن خوندم، خاندم قصه های های پیغمبر خدا را خاندم قصه های صحابه را پروفسور ای دیگر راه این ها از که بگویم که لا اله الا الله و محمد رسول الله صلی اللہ علیه و سلم و من مسلمان شدم و افتقای مسلمان شدن امید فلک سنفدوی مکتب میگن چرا سنفدوی مکتب محبت با رسول خدا داشت سنفدوی مکتب محبت با صحابه کرام داشت سنفدوی مکتب محبت با قرآن داشت از او خاطر محبتی از او با قرآن صحابه سبب یک علی اکبر فالسود را خدا. اینان هم متح محabbat چه قدر داریم؟ داره؟ از محبت خود گپ بزنه که ما چه قدر داریم؟ یک آخرین قصه یک بسیار کوسا، یک انسان مسیحی شده بود. از اینمی افغانه های باوشمان، یگوم یک زری یکی از تلویزیونها ها مصاحبه میکرد. رو واشینتن قرارای باوشمانای قومو از پاکستان اسلامی بود. خداگردان نگیره. نفس مسلمان بود مسیحی شده بود. ما یه پرستان کرد نتواخ، تو در اسلام چی پیدا بودی؟ دا اسلام چی بدیلی دیده بودی که تو مسیحی شدی گفت مادر اسلام نه بدیلی دیده بودم نه خوبی چرا؟ گفت به خاطر ازی که پدر ما وقتی که میامد پدر من وقتی که میامد می در خانه به یه ازی که برای من خدا را معرفی بکنم شیر میخواد من مستو تو دیوانه مارا کی برد خانه صد بارت را گفتم کم خورد و سی پیمانه جانا به خراباتا چا... تا لذت جان بینی جان را چی خوشی باشد به صحبت جانانه شمسالحق تبریزی اصفتنه چی پرهیزی اکنون که در افگندی صدفتنه فتانه نه گفتم اینی شیره یاد داشتم وقتی که در مسجد می رفتم عالم مسجد ما یک روز در باری صفات جلال گفت اپ و نام الهی الان اسلام باید اد 99 اسم صفات باید در 99 جمعه بر ها تشریح کنن چون دین کدام روز که عالم بخیزن گفت من هم این فهمیدم که رحمان چی مانا من هم این فهمیدم که رحیم چی مانا من هم این فهمیدم که غفور چی مانا من هم این فهمیدم کلیمه چی مانا پدرم برام نمیگفت پدرم برم تلویزیون آورده بود مادر حالان میکرد منم از روپ بساخت خودش خیاتی میکرد مولای مسجد ما بره ما چیزو نمیگفت مادر پدرم که این مسجد بورده بود که ما مولای مسجدو بشنوام صدای امام مسجد از لاستیکر لاستیکر خراب و جر بود چیز میکرد پدرم مرا در درس قران نمیمان پدرم برام کل ها را گرفت کورس انگلیسی را گرفت گفتیم خیر از خب کدی بگی کورس کامپیوتر را گرفت ما مخالفت نمی گریم که از کامپیوتر نکنه عکس از تکنولوژیست مجبور هستی کامپیوتر بخوانی بخون انگلیسی میخانی دلت زبانای دیگر را دلت اما تو نشکه اولاد تو همه چیز و بجز از قرانه گفت پدرم کل چیز برام یاد داد به از قرآن هر کسی بر معرفی کرد فلانی او در زاده است فلانی بچه‌ی ای کاکایم است فلانی پولوان شریک است فلانی دشمن و دوست است لکن گفت خدا را معرفی برم نکرد وقتی که در اروپا آمدم کشیش اومد گفت یک روز رفتم مولوی جس شخصان چونم قاتل کرد بروند شو که در سارلوچ قاتل سارلوچ آن که از مسجد میماند باباگر که ریش سفید از دروازه مسجد دست ما و کشید از خدا بترسید ریش سفیدان اطفال از مسجد دلسیا نکنین از او خرابیت و سر اطفال مسلمان در حلقات درس مسجد نکنید علمای اسلام با زبان شیرین رسول خدا صلی الله علیه و سلام او زبان شدید داشت که به دحمهات شریف از که نگه ای از نعمت و رحمت الله بود که پیغمبر بشار نرم بود یک غلام مش یک متر اون طرف یک ساعت اون طرف میبردش از پیشش پرسان میگد و رسول خدا که میرفت می رفت اخلاق پیش را پیشه کن دش سفید علما بزرگا شما اگر با این تندی و با بدخورده بدخرد زشتام راه جوانا بکنین مردم متنفر از اسلام میسازن گفت وقتی که رفتم در مسجد دش سفید خرس مراتی لا در مسجد نمان که سرلش نماز میشه ریش از خدا بترس حاجیا در وارد اشروی خانه خدا سرلش نماز میخونه حکم نکو فتواندی که سرلش نماز نمیشه بگو سرپوت خوبتر است وقتی که لباس سرپوت کنی خوبتر است سرلش نماز میشه. چرا نمیشه چرا گفتین وقتی گپ به شکل مرا متنافر از مسجد ساختن وقتی که گفت ما اومدیم در اروپا کشیش گفت آمد سرشانه مدرسه خدامان آیسای ایسای ما یاد کرد گفت مرا مسیر مسیراوان کرده گفت عیسا الایاز بالله بچی خداست گفت نفهمیدم تقوله والله احد وقتی که گفت آیاتو نخونده بودی که قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن و کوفوان احد هیچ کسی برای قل هو الله را ترجمه نکرد هیچ کسی برای برام معنای قرآن نگفت ایماناشو نفهمید بالاخره من مسیحی شدم برادر کسایی که مسیحی میشن دشمنان اسلام برنامه دارن پلان دارن جوونا و اطفال ما و شما رو گمراه میکنن یگانه راه نجات رو جواب با قرآن است اولادایتان رو به طرف قرآن برین امشو باید اینه با امراد در خانه خداون اینجا تعهد بکنین که ارتباطتان خب با قرآن مستحکم میسازین آیا این تعهد رو میکنین صدایتان فخش است چند چهار چارپاین نفر گفت اگر تعهد میکنین که میخواین که رابطه تان با تفسیر و ترجمه قرآن و قرآن مستحکم بسازین با صدای بلند بگوین که الله اکبر. الله اکبر تعهد میکنیم که بعد از این <تصحيح> درسای قرآن هم خودشتراک میکنین و هم اولادهای ای می میسازین الهی تو شاهد باش بلند بگو بگو الهی تو شاهد باش وساینه مگر قدر بس از برادرای عزیز علاقتون با مسجد مستحکم بسازین در درسای تفسیر و ترجمه بیاین و از علمایتون تقاضا بکنین که براتون درس قرآن بتر ان شاء تعالی کمر تمامی از اینا مشکنه خفه نشیل کسایی که مسیحی شدن ما دربارشون فرسان کردیم اونم کافرا و سای سابقه هستن اونمو انسانهای فروخته شده هستن اونمو کسایی هستن که بی هستن خان به این شکل مردم به فرید بتن که ما مسلمان بودیم اونا مسلمان نبودن اخیرا نداشتن یگان تاش که بازی خورده پس توبه میکنه و میگه مرا بازی داد مرا هزار دلار داد پنج هزار دلار داد برامو بر تویزه میتن ما یک دختر روان که تیم عشوقی توست که اگه میخوای که امراعی عزیز دوست باشی پس دو باید مسیحی شوی اکثرت برنامه های از una bar namayesh ast ke سلینا و الحکد لیلہ